أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين لا سيما بريه تن في الذين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا و بعد خیلی مدخل این و اخرجی مخرج و جلی ملدن که سلطان النسیر خب عرض سلام دارم خدمت همه اساتید و سروران بزرگواری که در جلسه تشریف دارن و عرض تبریک به مناسبت میلاد مسعود حضرت فاطمه محسومه سلام الله علیها خداوند انشاء الله این دعای ما رو که خطاب به ایشون ارض می کنیم که یا فاطمتش الجنه فیل نه، انشالله در مورد همه ما مستجاب بفرماید انشالله خب اول اوز میخوام از تاخیری که پیش آمد یه قدری در هماهنگی بر در آمدن اینجا مشکلاتی پیش آمد بر همین من اصلا دیر رسیدم بر همین مجبور شدیم و تاخیر شده بود همونجور جور که ملاحظه می فرمایید خب می زحمت دیگه تصفیر تا من اناوینی رو که حالا بعدا توضیح میدم این اناوین رو اینجا نمایش بینیم که حالا کسی خواست روی اناوین هم یادش برداری بکنه بتوانه وارد بحث من بررسی لوازم نظریه وحدت وجوده من قبلش من این مقدمه را عرض بکنم که واژه وحدت وجود واجه ایست بسیار بسیار وسیع و سرده که دهها در حقیقت دیدگاه رو شامل می شود. یعنی خیلی دیدگاه ها هست که شما اونها رو میتونید به نوع دیدگاه وحدت وجودانه بدانید حتی مثلا دیدگاه ماتریالیستاره که معتقدند جز ماده در عالم <تصفيق> <تصفيق> هیچ چیز چی هرچی هست در عالم ماده است و آثارش اونات ماده و این یه نوع دیدگاه وحدت وجودانه است اثبات به عالم هست و خیلی نظریات دیگر رو عرض کنم که مرحوم ناین حالا مرحوم میرزا مهدی آشتیانی داریم که ایشون چهل و هشت تفسیر مختلف از نظری وحدت وجود رو در رساله جمع کرده و اما خب این رساله هنوز یاف نشده یعنی چهل و هشت دیدگاه رو از شاید الیان و مکاتب آین ها هست که گردآوری شده و هر کنون به نوعی نوع نگلش وحدت وجودان هست با عالم. ارز کنم که 48 تفسیر جناب آیت الله استاد غلام رضا فیازی هم در قوم گفتن منم بیش از بیست دیدگاه رو گردآوری کردم در این زمینه بنابراین میبینید وحتر وجود یک عرض بسیار عریزی دارد که م... خوپرداختن به اونها موضوع بحث و مخارجا. اونی که الان من میخواهم به بررسیمون بپردازم دیدگاه خاص ابن عربی در مورد وحدت وجود که در واقع در بین مسلمانان و عرفای مسلمان و خب شاخص‌ترین و دیدگاه دیدگاهه نظریه وحدت وجود خوب رکن و ستون محور عرفانی ابن عربی است متابین یعنی دو تا اصطلاح هست باید یه فرق دقیق گذاشت آنچه که ابن عربی معتقد است فقط بحث وحدت حقیقت وجود نیست بحث وحدت موجوده عزیزان مستهزران که بعضیا ممکن تو عالم قائل به وحدت حقیقت وجود باشند. حتی مثلا وجود رو هم یه مقوله تشکیکی به بین خالق و مخلوق بدانن حتی خالق و مخلوق رو هم ایست نکنون تا با مرتب تشکیکی بدانن مثل ملاس ادرا حتی اقل ملاس تا زمانی که به نظریه وحدت شخصی نرسیده دیدگاهش این است که حقیقت وجود مشترکه متاقایل به وحدت موجود هنوز نشده تو اون دیدگاه بعدا که مطلب رو حالا به خودش میاره در سطح بالاتری مطرح میکنه و بحث وحدت شخصی وجود رو مطرح میکنه اونجا دیگه تقریبا تصریم میکند تقریبا هم نه اولاتش تصریم میکند به اینکه که بله اصلا جز خدا موجودی در عالم نیست خب ابن عربی حرفش همینه یعنی بحث فقط وحدت حقیقت وجود نیست بحث وحدت موجوده از این به بعد ما بنابراین بهتر بگیم وحدت موجود، اگر هم گفتیم وحدت وجود، مرادمون همینه. خب، در ابن عربی تعریف عرض کنم که وحدت موجود این است که، منو این رو فقط اجمالاً برای تذکر میگم چون فرضم برای این است که سخنانه های قبلی این مقدمات رو گفتند. ابن عربی خب تصریح میکند کند یه جا نه جا ده ها جا تا پیروان او در صد ها جاشه شاید حتی اقل صد ها مورد اگر نگیم چند هزار مورد ابن عربی و پیروان مکتب او تصریح میکنند جز خدا اصلا موجود دیگری در عالم نیست خب پس بنابراین هر چه که شما در وصف هر چیزی که بگید در حقیقت برمیگردد به همون یه موجود اینو یادمون نره اما نظریه وحدت وجود مستلزم یه نظریه دیگری به اسم نظریه تجلی که در واقع این نظریه نسبت خدای متعال رو به عنوان یک موجود مطلق نامتناهی با حالا به اصطلاح با مخلوقات توضیح میده این دو نظریه، نظریه وحدت موجود و نظریه تجلی، خب اساس عرفان ابن عربی رو تشکیل میده. منتها میگرد چون فرضم بر این که قبلی ها کردن، من دیگه عبارت ابن عربی یا دیگران رو در این مورد فعلا واردش نمیشه. اما بریم سراغ نقد و بررسی لوازمی که این دو نظریه داره. نظریه تجلی که در واقع لازمه یه نظریه وحدت موجود است من در اینجا اول رو بگم بیست به اصطلاح حالا نقد یا بررسی تحلیل هست که ایش نمیخواهی بگذارید تا مورد رو اووردم حالا اگر یه ثومش هم بتونیم بگیم نصفش هم بتونیم توی این فرصت بگیم هنر کردیم ببینید نظریه تجلی به این معناست که خود خدای متعال به شکل این مخلوقات موهوم نیستن تخیلات نیستن معدوم نیستن نمیدونم ثانیه این احول نیستن واقعا موجودن اما موجودن نسبتشون با خدای متعال چیه؟ حرف ابن عربی و مکتبو این است که اینها همه حدود و تعیناتی هستند برای همون ذات مطلق. یعنی اون ذات مطلق یه تعیون به خودش میگیره میشه این موجود تعین دیگری میگیره میشه اون موجود تعین دیگری میشواد میشه به اصطلاح موجود دیگری مثال معروفی که خود عرف دارن دارند و معروف ترین مثال تو این قضیه هست می‌دارند مثال دریا و آب دریاستی که یا آن فرق بکنید که آب دریایی هست جز آب دریا چیزی نیست این آب دریا تأیوناتو مختلفی به خودش می‌گیره های کوچیک بزرگ، بزرگ، بزرگ، انواع اقسام محچ‌ها، کف روی آب نمی‌دونم همه اینها حقیقتشون یه موجود، اونم آبه آبی که هر لحظهش اشکال تأییدات مختلفی به خودش میگیره. خب این نظریه که مخلوقات همه تعینات مختلف اون ذات مطلق هستن، از جهات عقلی و نقلی قابل قبول به نظر نمیرسه. اولین مطلب اینه که خب از ار نظر عرفا خدای متعال وجود مطلق نامتناهی است شما می دانید اصلی ترین و مهمترین دلیل مکتب ابن عربی در اثبات ارز کنم که وحدت موجود این است که خدای متعال چون نامتناهی است عدتا و شدتا و مدتا به معنای مطلق کلمه همه هستی رو همون یک زاد پوشانده بنابراین اصلا جا برای غیر خودش باقی نمیگذاره اصلا دلیل این که میگن جز خدا موجود دیگری نیست اینه دیگه که موجود ما نامتناهی اسمش تو خودشه نامتناهی یعنی همه همه هستی رو پوشش داده جا برای اصلا دومی باقی نمیمونه جا برای غیر اصلا باقی نمیگذاره. اولین نقدی که بنده میخوام عرض بکنم همین است که نظریه وحدت وجود و موجود با همین نظریه تجلی خودشون با هم ناسازگار. چرا به دلیل اینکه اگر نامتناهی به است که جا برای هیچ چیزی نمیگذارد که اصلا جا برای تجلی هم نمیگذاره. ببینید اون مثال دریا و آب دریا که زده میشود در اینجا مثال بگیم؟ ناقصیه یا مثال مقالط آمیزیه مثال نادرستیه شما وقتی که میبینید دریا موج های مختلف برمی داره اون دلیلش اینه که دریا همه جا رو پر نکرده غیر دریا شما مثلا یه فضای خالی دارید یه موج تو اون فضا پدید میاد یه موج دیگری پدید میاد کوچکتر بزرگتر به حال خارج از دریا در اون منطقه هوا و زمین ها این موج ها مجال بروز و ظهور پیدا میکنه اما شما فرض بکنید با آبی مواجهید که همه, همه همه همه هستی را پوشانده. حتی مثلا به تعبیر امروزی یا حتی اون فاصله بین هسته اتم بین الکترون ها پروتون ها نوترون ها حتی اونا را پوشانده. یعنی آب مطلقی که همه جا رو و همه چیز رو پوشانده. خب این آب اصلاً جایی برای تکون خوردن نداره. جا برای تجلی نداره شما تو دریا یا همه مثال های دیگری که زده میشه مثلا مثلا مثال موم شما علت این که میتونید موم رو به شکل های مختلف در بیاری اینه یعنی که یه قطع موم داری که این قطه محدوده حالا میاد باش یه چیز رو درست میکنید اما اگر یه موم رو تصور بکنید که همه هستی رو به معنای مطلق کلمه پوشانده باشه پس چی چیز نمیشه درست کرد مگر حال به یه معنی دومی که ذکر میکنم پس بنابر این اگر ما بخوام تلقیمونن نظریه تجلی همون تلقی آب و امواج آب باشد تلقی یعنی این نگرش به تجلی با خود وحدت وجود منافات و با وحدت موجود منافات داره مطلق بی‌نهایت مطلق مطلق اصلا جای تکون خوردن نداره که بخواد تجلی بکنن. منظور این تجلی به وجود نمیاد. این مال وقتی است که اینجا قاطی موج و اینها جای پدید میاد که آب نباشه مثلا هوا وجود داشته باشه بله. اما اگه قرار باشه همه جا رو آب پوشانده باشه دیگه موجی اصلا به وجود نمیاد. اگر تجلی را به معنای اهداس یک وجود جدیدی در کنار اون وجود دیگه بگیریم این معنا محاله برای تجلی لذا عرفا میرن سراغ یک معنای دیگریت تجلی که در واقع مراد اصلیشون آمد تجلی همینه که آقا ما وقتی میگیم تجلی معناش پیدایش موجود جدید نیست در کنار ذات نامتناهی موجود جدیدی پدید نمیاد پس چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که میافته این است که همان ذات مطلق نامتناهی که همه جا را پوشانده، همون ذات حدود و تعینات مختلفی به خودش میگیره تو دل خودش من مثالی که خودم به اسطلاح می پسندم که این مثال مطلب خوب نشون میده شما تصور بکنید شیشه ای نامچنای همه جا رو پوشانده باشه همه جا این شیشه است بله چیزی در کنار شیشه به وجود نمیتونه بیاد در ثناوردید تجلی به این معنا نداریم اما به یه معنای دیگری که مراد عرفا از تجلی غالبا اونه این از که به هر علتی این شیشه ترک های مختلف برداره. مثلا، حالا به تعبیر من. فرض کنید این صفحه شیشه یه ترک اینجا داره یه ترک اونجا برداره، یه ترک اونجا برداره، بی نهایت ترک داره. ترک هایی که هر کدوم برای خودشون محدود و متعینند. و وقت شما هر ترکی رو مثلا یه ترک برمیداره به شکل انسان یه ترک برمیداره به شکل مثلا چه می دونم یه ترک برمیداره به شکل پرنده زمین، آسمان همه چی پس موجود جدیدی پدید نیامده همان شیشه واحد هی حد بهش میخوره ترک های مختلفی بهش میخوره تعینات مختلفی بنابراین همان شیشه واحد است که به صورتهای مختلف خودش رو نشان میده. اما اگر این تفسیر رو از تجلی داشته باشیم که ظاهران هم مراد همینه خودشون هم تصریح می من دیگه ترجیحاً عبارات رو کمتر اینن می مگر مگرار در چند مارد که وقت برای خوندن مدارک گرفته نشدن. این تفسیر دوم از تجلی هم عقلا و نقلا باطل. عقلا باطل است. زیرا ببینید به این نکته از همین اول خواشگین ایت بکنید. ما گفتیم وقتی یک موجود بیشتر در عالم وجود نداره پس هر اتفاقی که داره تو عالم میفته سر اون یه موجود داره میفته دیگه. سر چیز دیگری که نمیفته. حالا اگر قرار باشد ذات مطلق نامتناهی که همه جا را پوشانده هی حدود و تعینات مختلفی به خودش بگیره خب عقل میگه این برای خداوند نقصه حد خوردن خود نفس حد خوردن خود خود نفس محدود بودن نقصه دیگه نقصی است که متأثر تو درون اون چیز زنده اتفاق میفته الان اون شیشه که ترک های مختلف برمی داره همون شیشه برای شیشه نقص است که ترک بخوره به معنای این که یعنی حد و حدود برداره درون در خودش یعنی که هم عقل و هم ادله حالا عقلی و فلسفی میگه اما غیر از اون اداله این نقلی هم همین میگه. تو عرفان ابن عرمی فقط چون مطلب مهمه یعنی از این جهت که مشخص باشه خود ابن عرمی و پیروانش تصریح میکنن که این حدود و تعینات به خود خدا میخوده. یعنی به این نکته بخام توجه بکنید. چون غیر خدایی نیست پس خود خداست که داره حد و تعیون داره. این اول ادعا معلوم میشه این ادعای اونهاست. تحریف شده نیست مثلا ابن عربی در فصل حودی می که انهو اینو الاشیا ول اشیا محدودا او در این حال این اشیا همه اشیا محدودا این اختلاف حدودا البته حدوداشون با حد انسان با پرنده با فرشته با زمین آسمان متفاوته فهوه یعنی همون خدای متعال. فهو و محدود به کل محدود همون خدای ذات نامتناهی است که با این تعینات با هر محدود یعنی با هر ذات مخلوق متعینی محدودیت پیدا میکنه فما یحد شیء الا و هو الحق پس هیچ چیزی حد نمیخورد حد بردار نیست مگر اینکه اون چیز خود خداست یعنی خود خدا داره حد میخوره اینو یادمون نره شراحان ابن عربی هم مثل قیصری و اینها هم همین رو گفتن که لانه عین و با کل محدود فحدو حد الحق یعنی قیصری زین همین عبارت ابن عربی میفرمایید کانال حد عبارت آن حد مراد ما از حد تعین و جعل او محدودان به حد کل محدود جدلش اینه که به خاطر اینکه خداوند عین ای هر محدودی است چون عین هر محدودی است پس حدش حدی که داره حد خداست یا مثلا قیصری واسه حمزه ایلف طفسیودی دارد که کن و حق این و ها یجده تهدید عرض کنم که و فراوانه دیگه من وقت رو با چیز و خوندن مدارک که بیشتر نمیگیرم مدارک خیلی زیاده گفته من نظر عقلی باطله به دلیل اینکه، عقل حکمی میکنه که ذاتی چیزی که ذاتاً بیتعیونه حسن از اون اول چرا نمیگیم خدای موجود و محدوده؟ اصلا قائل نباشیم به این که خداون نامتناهی و مطلق اصلا از, از اون اول بگیم خدا هم مثل بقیه محدوده چرا نمیگیم؟ با داره که عقل میفهنه آقا محدودیت نقصه و گرده خوب خدا هم مثلا فرد بکنه کسی بیاد بگه حضرت رسول اکرم صلی الله علی و آله و سلم حتی تو همون مقام نورانی اول و ما خلق اللهی شا او خداست علی عزبالله شما نمیپذیری حتی پیغمبر اکرم با همه اون کمالات شما نمیپذیری چرا؟ یا آخ بالاخره پیغمبر این همه کمالات داره بالاخره یه حدود و نقاعثی هم داره دیگه چه میدونم جسمی داره، این حالاتو داره، اون حالاتو داره بیمار میشه، اینجوری میشه، اونجوری میشه این نقص بر خدا پس اگر خدای مطلق نامتنایه هست عقل میگوید حد برداشتن یعنی ناقص بودن این یکی پس عقل حکم میکنه که زادی که بیتعینه نمی شود تعین بردارد چرا چون مستلزم هم لوازم عقلی باطل متعددی داره هم در ذات او کثرت پدید میاد هم با بساطتش منافات پیدا میکنه هم نقصی اما ان نظر عقلی هم باطل به جدی به دلیل اینکه در هم قرآن و هم در ده‌ها حدیث که حالا آره من بعضیشو گرداوردی کردم این است که به هیچ وجه خداوند حد و تعین نمیپذیرد خود خدا نمیپذیرد هی باز مجبوره من تشরাল بکنم در ارفان ابن عربی نظریه بحث وجود حدها حدیان که به خود خدا میخورن اما دین ما میگوید خدا حد و تعین نمیپذیرد و تغییر هم نمی که حالا تغییرش رو ذکر میکنیم یه پاورقی اینجا الان داریم که مرموهای متحریر تو توضیح ارز کنم که همین عقیده اولفا می به همین خاطر که اولفا مخلوقات رو میگن حق مقیت یعنی خدای مقیت شده خب حدیث امام رزا علیه السلام در مورد خدای متعال می فهمم الواحد فلان گزل واحدن فلان بلا حدود ولا لا خوب خب نه حد برمیداره، داره نه عرز برمی داره و دقت بکنید ولی لا یزال کذالک الازل به از... اصل تا عبد ولی یزال کذالک یعنی نه این نه که الان حد بر نمی داره اما حالا فردا یه اتفاقی براش میفته که حد بر می داره نه خداوند حدود ندارد تا ابد از ازل نداشته تا ابد هم حد پیدا نمی کنه اصل اصل فرق خالق و مخلوق اینه که آقا مخلوق محدود خالق نامحدود دیگه والله شما به خود خالق حد بزنی چه اتفاقی یه چه فرقی و مخلوق پیدا میکنه به همین خاطر می‌فرمائند کل ما وقع علیه حد هر چیزی که بهش حد بخوره فاو خلق الله حز وجل خدا نیست خلق خداست بعد وعلمن الواحد الذی وقعون بقای قائمون بغیر تقدیرن و لا تحدیدن حالا همین خدایی که نه مقدار نه حد نه کمیت نه تعین برمیداره بله این مخلوقات رو میافهدید که این مخلوقات مقدرن به تحدید و تهدید. بله مخلوقات حد و مقدار دارن برخلاف خدای متعال که لا، که از ازل جور است من همه احادیث رو باز نمیخوانم باز احادیث دیگری از حضرت عبالحسان علیه السلام سبحان من لا یهد ولا یوسف ولا یوسف نیزه کم به سبحان است منظه است کسی که حد نمیپذیرد نه امروز پنجشنب حد نمیپذیرد فردا جمعه میپذیرد هرگز نمیپذیرد حدیث والی از امام صادق علیه السلام باز سبحان من لای علم فلان لایو حد کسی که حد نمیپذیرد و از این قبیل دیگه زیاد پس این مطلب که بگیم خود خداست که حد بر این با سریع حبارت دینی ما هم سازگار نیست. حالا اینجا ممکنه شما یه اشکالی مطرح بکنید. اون اشکال این است که من. اون اشکال بگید که آقا بله ذات الهی به عنوان نامتناهی مطلق بله این حد و تعین بر نمی داره. یعنی مطلق از آن جهت که مطلق است لایو حد اما از جهات دیگری حد بر می دارن. اما بالاخره نامتناهی به باید نامتناهی لایو حد جوابش این است که بله ابتدا مثلا میگیم ذات مطلق نامتناهی ابتدا حد نداره ابتدا حد نداره اما بالاخره بعدا حد میخوره یا نه شنبه حد نداره خب یه شنبه حد میخوره بهش باز به خود او حد میخورد نه به چیز دیگری یعنی اگر یعنی یکی ممکنه این فرض رو بکنه آقا خدای متعال ازلیه از ازل بلاحد بوده همینجوری بلاحد میمونه میمونه میمونه از موقعی که شروع کند مثلا به آفریدن حالا به تعبیر ما مخلوقات سر پیدا میشه از اون موقع به بعد حد میخورد اما قبل از اون حد نداره هیچ چیز جوابش این است که اگر گفتیم بعداً حد می که پس بعداً حد می پذیرد حالا فرقی مگه میکنه از عزل بپذیرد یا نه یا ممکنه کسی این اون اشکالی که گفتیم اینجوری توضیح جواب بده آقا اول یه اشکال دیگری اضافه بکنم، بعد به این پاسخ بپردازم. اما این حرف که بگیم از ازل خدا نبلاحد بوده اگه موقعی به بعد حد پذیرفته. این با حرف خود عرف منافات داره. عرف تجلی را ازلی میدانند. یادمون نره. یعنی شبیه حرف فلسفه که آقا خداوند هیچ موقع بی مخلوق نبوده به دلیل اصل ضرورت علی و معلولی، بداخلی مخلوق و مای از ازل همراه با خدا بوده. خدای مخلوق اینجوری نبوده خدای مدتی مخلوق نداشته بعد مخلوق دار شده. انتا حال به حالا جای حرف اونجا نیست. بعد که مخلوقات ازلی هم ازلی هم که خب قائم به خدا. مثل عقل اول و مسلمی هم. عدیدگاه عرفا هم تجلی ازلیه. یعنی از همون ازل که خدای مطلق نامتناهی مثلا وجود داره از همون ازل تجلی هم وجود داره به معنی حد خوردن پس این حدود و تعینات هم ازلی اینجوری نیست که یه مدت بی تجبی بوده میگیم ما با این میگیم خدا بعدش تعینات پیدا میشه نه تعینات هم ازلی هستند حداقل بعضی از تجلیات به تعبیر از ازل، پرتو حسنت، ز دم زد تجلیات، ازلیه پس اون پاسخ که ابتدا نداره، بعدا میخوره پاسخ درست نیست، نه از همون اولی که خدا خدایی کرده مثل اینکه شیشه از همون اولی که شیشه بوده است، ترک ها رو داشته خب یه کسی ممکنه بگه این هم اشکال نداره چون اشکال ما این هست که آقا پس اگر از اول این شیشه ترک ترکهار داشته از اول از ازل خداحد داشته پس خب این که دیگه چه مطلقی شد خب از اون اول بگیری موجودی داریم که به اصلا تعیینات و حدود داره ممکنه یک کسی جواب بدهد ب... که بله ما که میگیم مطلق وجود داره یعنی اون مطلق در ضمن مقیدات وجود داره بلاخره این ای که ترک خورده بلاخره شیشه بدون ترکی که در ضمن این ترک ها ساری و جاریس وجود داره اون مطلق در ضمن مقید وجود داره میگه ممکن اینجوری بگه ما اون به اون مطلقه در ضمن مقیدات از اون قیدا صرف نظر میکنیم اون مطلقه رو بهش میگیم خداوند خب اولا این که یه نوع نقص و نیاز برای خدای متعال که خدای متعال برای تحققش تحقق عینی خارجیش باید در ضمن اونها وجود داشته باشه یعنی اگر قرار باشه خدای متعال شما حدود بردارید فقط یه فرض ذهنیه تو مقام واقع خدای متعال در زمین مخلوقات وجود داره و اگه مخلوقات نباشن و چه بلایی سر خدا میان پس این همه که تاکید شده است که یا ایهان ناس انتون مول فقر آیلالله والله و الله و الحمید ایهان ناس نید یا ایهان مخلوق انتون مول فقر شما به خدا محتاجید خدا از هیچ جهتی به هیچ کس نیاز نداره در حالی که تو اون پاسخ خدا نیازمند میشه یا باز ممکنه کسی بازه جواب بده اینطوری بگه بگه آقا اونی که بله خیلی خود که تو خارج از ازال تحقق داره موجودات محدود و مقیدن یعنی یه وجود است که حدود تقییناد خب اگر این پس مطلق می شود یه انتظایی که ذهن ما داره از اون مجموعه مقیدات می کند اونی که تو خارجه این نیست مثال بزنم مثال که اونی که تو خارجه های محدودن هر کدوم به تنهایی شما میای از این انسانهای محدود یه مفهومی به نام انسان مطلق انسان انتزاع میکنید خب اگر شما مفهوم کلیه مطلق انسان انتزاع کردید این فقط تو ذهن شما هست اما اونه که تو خارجه چیه تو خارج های محدود و متعالی لذا شما آمدید اگر در ضمن اون مغیدات آمدید گفتید من از تو دل این مغیدات یه موجودی به نام موجود مطلق که این مغیدات رو نداشته باشد بیرون میکشم خب این فقط بشه انتظار ذهنی شما اونی که تو خارج واقعیت و تحقق داره موجود محدوده با حالا شما ارس کنم که یه آب دریا رو تصور کن که تا همه جشه حد میخوره شما بکن از این موجای مختلف بین نهایت موج من از بین این موجهای یه چیز نام مطلق آب بیرون میکشم مطلق آب بیرون میکشم که میشه تو ذهن شما نمیشه تو خارج اشکال مهم دیگری که داره اینه که اگر فرض بکنیم خدا, خدا ذاتا بلا بعدن تعیون بعدن تعین پیدا میکنه ولی به بدن مثلا رتبی بدن زمانی هم نه حالا فرض هم. به بدن رتبی تعیون پیدا میکنه محدود و متعین شدن مستظم تغییره ببینید شیشه ای که هنوز ترک نخورده وقتی بعدا ترک میخوره حال اون شیشه قبل ترک با بعد ترک یکی نیست دیگه یه اتفاقی توش افتاده یه تغییری درش پدید آمده که ترک برداشته خب اگر این رو گفتیم مستلزم تغییری در حالی که باز عقل هم تغییر در ذات الهی را رد میکنند و همین اون ادله عقلی و فلسفی و هم نقل به صراحت حدیث امام علی سلام رو علیه اینجا علیه السلام آل نمیгоردم بفرمایید روایات متعددی به این مطلب تصریح میکنند که مخلوقات دائما اونها متغیرند. از حالی به حال دیگه متغیر میشن اما اینطوری نیست که مخلوق وقتی تغییر پیدا میکنه خدا هم پا به پای اون تغییر پیدا میکنه امام رضا علیه السلام میفرماند لا یتغیر الله بین قیار المخلوق خدا با تغییرات مخلوقات تغییر پیدا نمیکنه کنه کما لایت حددت به تهدید المحدود همونطور که با حد پیدا کردن مخلوقات او حد پیدا نمیکنه. در حالی که همه این محدودیت همه این تغییرات همه این بلاها داره سر خود خدا میاد پس اصلا حد خوردن ولو بگیرید از ازل بعد ازل نمیدونم چی؟ برمان مستدام تغییر هست در اون ذات نامتنایی نیست یعنی ذات بلاحد با ذات باحد یکی که نیستن که تغییر پیدا میکنه. خب دیگه صدها حدیث و اینها یعنی یه نمونهشه، تصریح میکنن به اینکه که بعد حدیث داریم تویله صادوق هم هست و نخوار هم هست یعنی شبیه اشکالی است که به فیلسوفان هم وارده دیگه ببینید یکی از اشکالات فیلس... یعنی یکی از سخنان فیلسوفان در اثبات اینکه عالم خلقت ازلی یه یا خلقت مایی بوده است همینه که اگر ما فرض بکنیم خدای موقعی بی خلقت بوده بعد با خلقت شده این تو احوالات خدا تغییر پدید میاره خدا هنوز اراده خلق نکرده بعد اراده خلق کرده اگر اینو بگیم حرف فیلتوفان این است که خب این قبل و بعد خدا که خدا اراده نکرده حال قبل از ارادش با حال بعد از ارادش فرق میکنه این شبیه همون حرفه که اون حرف باز در جای خودش باطله نخیر برای همین روایات تصریم میکنن که خدای متعال قبل اراده با بعد ارادهش هیچ فرقی نمیکنه این آقا چه جوره میشه میفرمایند که همونطور که ذات خدا جور و کیف نداره اراده خدا هم کیف نداره فقط این رو بدانید که ذات الهی با آفریدن مخلوقات تغییر نمیپذیرد و همین خاطر وقت بحث رو روایات بردن اونجا که اراده خدا اینجا به معنای احداث و خلق خداست نه به معنای اینکه لا یا تقل ها من حال ان حال اینطوری نیست حالا اینجا همینه یعنی اگر کسی گفت که حال خدا با قبلش با بعدش فرق میکنه و بالاخره فرق میکنه همونی اینکه خب عارف همین رو داره میگه دیگه خب این با انبوه روایاتمان سازگاره که دیگه وارد روایت بیشتر نمیشه اما بریم خود مستقیم به جای نظریه تجلی که لازمه این وحدت رو سال خود وحدت له وجود خود نظریه وحدت هم وجود لوازم بسیار دارد که ما ردار حدی که برطا به پنجمی یا به ببینید میدانید عرفا مثل فیلسوفان ما خود صدرات اون مراحل آخریه تحولات فکری اون هم همین حرف رو میزن که ما وقتی که به سایر موجودات میگیم موجود عالم قادر و اینا همه انتصاب مجازیه زیاد دارن دیگه خیلی من باز نمیخوام عباراتو بخونم فرا یعنی هم پر است از مدارک عرفانی که انتصاب های مخلوقات به صفات رو میگن این صفات حقیقتا اولا و به ذات مال خداست انتساب اشون مال خداست پس ماق، مخلو... واس مخلوقات چی کار این فساد اینا مجازن منتسب میشن به وجود و ال و قدرت مثلا میزنن میگه نسبت لبن با لابل نسبت طعم با تامر از این مثالایی که زنی میشه که حالا همین مثال واقعا مبالغه آمیزه خب اگر تو وحدت موجود رو بگیم چون موجود جز خدا نیست پس اگر غیر خدایی بخواد عالم باشه اینها بعد مجازی باشه اولا این حرف اشکالش، یه اشکالش این است که مستلزم قاعده نفی تناقض قاعده امتناه تناقض ما دیگه تو این عالم قاعده بدیهی تر از قاعده امتناه تناقض که نداریم که یعنی عبده بدیهیات عالم قاعده امتنای تناقض. اگه قرار باشه کسی اینو قبول نداشته باشه که اصلا چه اصلا جمع کنیم بریم شه حرف زد باشه حتی دو دوتا که میشه چهار تا نمیشه پنج تا نمیشه سه تا پایش به قاعده امتنای چون چون همزمان لازم میاد هم چهار باشه هم پنج باشه خب ما دیگه عقلی تر, تر از این قاعده نداریم حالا این سخن که انتصاب یا اطلاق واجه های موجود عالم قادر به خدا به خدا حقیقی به دیگران مجازیه که قاعده ایمتناهی تناغذ چرا؟ اگر عقل می کند که این حکم عقل دیگه مسلمه دیگه شما بگویید وحاله بگید علم حضوری هر تعبیری میخاید بکنید. از دو شق متناقض یک کدوم درسته دیگه؟ ما شق ما گیر داریم. همون که اجتماع نقیزه این محاله ارتفاع نقیزه این هم محاله دیگه. اگر این قاعده معتبره که معتبره دیگه میگم اگه اینو نگیرید اصلا حرف اسایش که خود هم و بعد اینا که هم همین حرفی که درسته همش غلطام است. روی چرا مسلزم نفی قاعده تناقضه به خاطر اینکه وجود و عدم موجود و معدوم متناقضه اینن. شما صقر ثالث بین موجود و معدوم ندارید اصلا حکما میگن اینکه ابده بدیهیاته آدم امتنان تناقض، اون باز به یه پایهای بنده، اون پایه این است که اجتماع وجود آدم لازم میاد. این قرار باشه شما متناقضه این هر دو رو با هم بپذیری، اجتماع وجود آدم لازم میاد. اصلا وجود آدم عدم ذاتا جمع پذیر نیست. خب یعنی چی؟ یعنی آقا یه چیز یا موجوده یا معدومه. مجازن موجوده اینجا یعنی چی؟ مثلا چه ای ببینید، آقا این میز یا موجوده واقعا؟ یا اگر موجود نیست، معدومه دیگه؟ اگر شما قائل شق یعنی اگر وقتی میگیم مجازن، مرادت یه شق سالسیه که قائلیت تناقض ناف کردی، شق سالس بین دو ناریز و نداری حالا جدا از اینکه اصلا در مقام تصدیق حالا این حرف مشکل داره از تو مقام تصور هم مشکل داره این میز مجازان موجوده یعنی چی اگر موجود موجوده اگرم معدوم معدومه مجازان موجوده یعنی چی حالا غیر اینکه اصلا تعریفش تصورش چیه اگر مراد شما از مجازان موجود شق ثالثی بین وجود و عدم است به خلاف قاید ایمتان رو اگر بگید نه کمان که حالا بعضی اینجوری توجیه ممکنه بکنه میگن آقا نه مراد ما از اینکه این مجازن موجوده یعنی قائم به خودش نیست بالاخره از خودش چیزی ندارد هر چی که دارد از مثلا خدا دارد خب اینو از اول خب همینو بگو کسی ممکنه این نبوده که یعنی مراد عرفا واقعا از مجاز موجود اینه که یعنی این میز واقعا موجوده منتها وابسته و متکی به خداست اگه اینه خیلی خوبی همین حرف درسته اما چرا چه میذاریم مجازن موجوده بگو موجوده با همه وجود همه چیزش رو از خدا دارن اما واقعا موجوده نکته دیگه، اما من ما باز عرض می کنم بالاتر از علم حضوری به خود که نداریم که دیگه اگر قرار باشه علم حضوری را بپذیریم که حالا اون خودش جای بحث داره و اگر قرار باشد که ما یه مصداق به عنوان محکم ترین مصداق علم حضوری مطرح بکنیم اون علم رو به خودمونه دیگه آقا اگر علم حضوری حجت است که تازه تمام قرف های یه میلیارد اینا دیروز سر کلاسی گفتن. آقا شما یه میلیارد استدلال هم که بیاری استدلال هم از مقوله علم حضوریه. درسته؟ با یه میلیارد استدلال یه دونه علم حضوری را نمیتوانی باطل بکنی. مثل اینکه این همه قائلانه به, به جبر یه میلیارد استدلال آوردن اما بنده با علم حضوری به خودم میابم که مختارم مجبور نیست نیستم. بفرمایید حالا جدا از پاس قبول شما آقا بنده به اگر شما علم حضوری را از حجیت بیاندازی که تو عارفم وراشو برو دیگه تو من با معدوم که را یعنی اونایی که این همه حرف زدن و این همه استدلال کردن معدوم بودن و استدلال کردن این همه حرف زدن معدوم بودن خداحالا اگه موجود بودن دیگه چکار کردن. پس اگر من موجودم بنده به علم حضوره میام هم اقام موجودم مجازن موجود نیستم یعنی چی مجازن موجودم اگر هم معدوم بشم که خب معدوم بعد حال میخوانم بگیم مجازن موجود جدا از این که تصدیقش حالا ابهام داره تصورش هم ابهام داره خلاصه اگر شقق سالسی به این موجود و مدرومه باطله اگر مراده در مجازن موجود یعنی همون موجود واقعا هم موجوده موجود قائم به غیره خب این ها از اول مثل بچه آدم آدم بگیه که خب همه وابسته به خودم دیگه چرا؟ تعبیر رو ما یه تعبیری بکنیم که هزار و یک جور توش حرفه اما اون واقعاً مدارشون شدن مجازاً موجود این نیست که بقیه هم موجودن قائم به خدا حالا دیگه ال معنا فی باد دیگه حالا مجازاً موجود حالا لبن و لابن و نمیدونم اینا اینا همه استعارات ادبیه تو این بحث‌های وجود شناسی که نمیشه از این حرفا استفاده کرد این موجود نیست، انتصابی به وجود داره یعنی چی؟ اشکال بعدی همینجوری بگیم که من بنده به سرعت برم اگر بگیم که جز خدا موجودی در عالم نیست اشکالش این است که یه اشکالش مستلزم نفع شریعت و احکام و نوایه الهیست چرا؟ به خاطر اینکه شریعت سراسر پر از امر و نهیه پر از فرمانه دروغ نگو غیبت نکن دزدی نکن نمیدونم گناه نکن عبادت کن عبادت شیطان نکن عبادت هوای نفس نکن عبادت خدا رو بکن و و و و و, و. سؤال اگر غیر خدا موجودی نیست طرف خطاب این عوامل و نواهی کیه؟ خدا به کی داره میگه دروغ نگو؟ به خودش میگه چون اون بر اینکه جز خدا نیست دیگه خدا به کی داره میگه گناه نکن؟ به خودش میگه؟ به کی میگه از شیطان پیروی نکن؟ اولا اگه جناب شیطان خودش میشه بده که تجلیات خدا پس همونطور که اولفا دقیقا تصریح کنه رو برسیم گزن شما شیطان هم خدا رو پرسیدید حالا بهش میبسید تو به کی میگه ظلم نکن طرف این خطابات که شریعت موقعی قوام پیدا میکنه که غیر خدایی در عالم باشه اصلا قوام شریعت و عوامل و نواهی الهی به وجود غیر خداست و یعنی تمام اینها بیمعنی میشه لا تعبدو الا ایاه یعنی چی؟ اصلا که امکان داره غیر خدا رو بپرستیم که خدا گفته نپرست بهتاقه عرفه یه جایی همین حرفو میزنن دیگه اما دین که گفته که نه شیطانم به فلس، نه خودت و نه هوات و نه جن و نه فرشته رو نه بت و نه, نه نمی‌دونم اینونه. خب وقت جالبه. حالا این تنز جالبی تو این قضیه هست خیلی خوب. خدا به کی گفته دروغ نگو، ظلم نکن به خودش؟ اولا، حالا اینو تو قسمت بعد میگم. خب اگر خدا به خودش میگه دروغ نگو، تنز ماجره ها این چرا خودش به خودش دوش نمیده و دروغ میگه باز یعنی خود خدا به حرف خودش هم گوش نمیده و باز اونایی که معاخذه میکنه کی رو معاخذه میکنه خودش رو معاخذه میکنه خودش رو عذاب میباره جهنم میده وقتی خدا، وقت فرستادن و پیانبران لب میشه دیگه یکره جا من از ظلم ها نور اونی که از ظلمت خارج می شود و به سوی نور می اون کیه یادمون باز نرود هر چه بگوییم و هر چه بار بکنیم رو همون خدا بار می شود یعنی خدا از ظلمت خارج می شود برود به سمت نور البته یه جایی عرفت تصفیم می بله آقا شما اگه رو تو زیاد بکنیم ما بالاتر از اینش هم میگیم حالا هر کاری میخوای بکنی بکن بله خودش دروغ میگه خودش ظلم میکنه خودش هم به سوی نور از ظلمت خارج میشه و نور میره وقتی خیر خدایی نیست حالا شما کیو میخوای رو بگیری کیو میخوای مؤاخذه بکنی خدا خودش از خودش حالا هر کاری کرد کرد اشکال بعدی این است که اگر موجود غیر از خدا نباشد پس همونطور که عرفا در صدها ها جارم دو مدرک رو نمیخونم دیگه این جز بدی یاد فائلی هم جز خدا نیست وقتی یه موجوده یه فاعلم بیشتر نیست بنابراین همه فعل های عالم میشه فعل او تصویر بیکنم از این عبارت ابن باشه لا موجاده الا الله ای لا فائل الا الله شاه راهانش هم که دیگه مفصل سخن تو این زمین. خب حالا اگر بگیم فائلی جز خدا نیست یعنی فائل همه فلها خداست این دیگه چندین باطل میاره اولینش جبره خب اگر این من نیستم که دارم دروغ بگم مثلا منی در کار نیست فائل دروغ کیه؟ یعنی سال اصلی اینه. تو قبایه، تو گناهان آخه یه مشکل اینه که ها هرچی فعلای خوب خوب و قشنگ قشنگ و ایناست به خدا نسبت میدن راست کویی نمیدونم ادالت چی چی چی همینه خود اما به افعال قبیه که میرسته تقریباً ترمز میکنن متوقف میشن حتی یه جای دیگه حتی اون ترمز هم دیگه رها میکنن اما حالا تو به اول دروغ فعل کیه گناه فعل کیه خداست پس ظلم فعل کیه اگر همین ها فعل خداست چرا خدا تو قرآن به این سراحت خداوند از خودش سلب قباف افعال قبیح میکند؟ کند لا یزلمون ناز، بلا که ناسالا انفاسه یزلمون چندین آیه با خدا زور نمیکنه ها مردم خودشون درن زول میکنن. ان الله ها لای امور و فحشا و سو اینالله ها لای اخلف و المیاد اینالله ها لای و عجر المحسنین و و و و, و الاخر پس پس من خودم اختیاری ندارم، فائل همه ی های من، حتی گناهان من که بعدا یه جایی تصدیم میکنم خود هست. ما یه همایشی، امین چند ماه پیش داشتیم در محصه پژوهشی حکمت فرتبه که من عضو حیات هیت علمی اونجا بودم و بودم امیتا هم است راجب ابن عربي بود عرض کنم که عنوان سخنرانی من که مقالش به صورت کاملتر الان مجموعه اونها داره چاپ میشه از جمله سخنرانی من. یه مقاله ای دارم تحت عنوان ببشید ا مقاله عنوان شده جبری یا اختیار از نظر مکتب عربی ابن عرب پیوان ها. به تصریح تصریح تصریح ابن عربی انسان مجبور مطلق است مطلق اختیار ندارد. تسریح ها حالا پرده بالاتر قضیه میشه <تصفيق> اولف تو بعض جبر و اختیار سه پرده از خودشان نشان میدهند. اولین پرده این است که آقا انسان ها مختار نیستن مجبورن چون فلا فلا خود است خب میگم تصریح فراوان فراوان نمونش اشاعره مگه اعتقادش اعتقاد جبر نیست همه میدونیم میگه اشائره جبری مست لکه ابن عربی مکرد آدرس ها رو عملتون تو مقاله آوردم اشالله چاپ شد ببینید خیلی آدرس اونجا برد ابن عربی تصریح می که آقا تو باست جبر و اختیار حق و اشایر است حق و اشایر است می اشاره اشایر نظریه کسبند که کسب همون فرق با جبر نداره حالا سعی کردن خورده با اصطلاح نظریه کسب جبر و یک خورده شیکترش بکنن. اما جبریان هم دیگه همه میدونیم. ابن عربی اولا اشایر رو اهل الله و اهل حق معرفی میکنه تو چندین جای آثارش میگه اینا حق رو درست میدن. اینا اهل درک حقیقت هست درست گفتن که ما کاسب افعالیم و از خودمون نداریم بعد فراوان مدرک میاره این پرده اول تو این قسمت اما یه جاهایی دیگه از اینم فراتر میره میگه اشعاری آقا بی خود کردن همون یه ذر نقش هم برای ما غاهر شدن به نام کسم ما همون یه ذر نقش هم نداریم میدانین اشعاری توضیح نظریه کسم میگن بله خدا به من قدرت داده نمیگه ما قدرت نداریم مطاقا این قدرت من نیست که الان مثلا لیوان رو بلند میکنم من قدرت دارم اون قدرت من هیچ تحصیل در بلند کردن لیوان نداره قدرت خداست که اینو بلند میکنه و دست من روز باشاری خب اگه قدرتی که شما در این تحصیل چه قدرت داده حالا یه برست دیگه میگه داده دیگه فوزولی موقف اشاره از مبانیشون اینه دیگه لای سلام ما یفتن داده هیچ فایده ای هم نداره ما حق به خدا نداره ابن عربی اشکالی که پرده پالاتر به اشایره میگیره اینه که آقا ما حتی همون قدرت هم که تازه اشایره میگن داریم اما فایده است هم نداریم یعنی نظریه جهمیه رو میپذیرند میدانید جهمیه جبری مطلق مطلق هست جبری هست جبریه یه خورده میان حالتر میان روتر اما جبریه که نه اصلا مطلقا نه اصلا با قدرت هیچی ابن عربی به این نظر نظر دوم میرسه اشاره برای چی جالبه میگه ما حتی همون قدرت حادثت هم نداریم بعد تصریح میکنه اینجوری روی صبحان من ما اینم یه پرده دیگه. یه پرده بعدش بالاترش این است که آقا اصلا جز خدا چون موجودی نیست. اصلا بحث جبر و اختیار ثابته به انتفاع موضوع. یعنی اینکه این هم آیات روایات داریم انسان مختار است مجبور از هست. هست نیست فلان این حدیث معروف لا جنب لا تفویض رو اینجوری تفسیر میکنه ابن عربی و پیروانش باز تو اون مقاله مدارکش رو ببینیم من تو اینجا مقاله رو دارم همراه مگم که آقا جبر و تفویض مال موقعیه است که وجود غیر خدا باشه حالا بیایم دعوا کنیم ببینیم موجود مجبور یا مختاره اما وقتی غیر خدای نیست اصلا لا جبر و لا تفویض اصلا سالبه به انتهای موضوع اصلا غیر خدای نیست که بخواد مجبور باشه یا مجبور نباشه این دیگه او پرده آخری که دیگه در واقع اصلا بازی رو به هم زدنه یعنی زدن زیر همه چی خب پس یک این هست که جب لازم میاره یه نکته یه دیگه این است که خب حالا سوال اینو میشه اگر انسان مجبور است پس نقش انسان تو افعال چیه جواب میدهد ابن عربی که نقش انسان تو افعال فقط به فقط ابزار دست خدای متعال فقط حکم ابزار داره تصریح می کند ما دست خدا مثل اره نجار دست نجاری ما ابزاری فقط باشم یعنی نگاه ابزار گارانه میزنید شبیه عشائره منطقه که های اوقات عشائره تحبیر حالا عبزار دارنگاه اینکه ما محل بروز و ظهور فعل خداییم ابن عربي هر دوشو داره ما محل بروز فعل خداییم به گاه اوقات هم میگه ما ابزاریم. مثلا جالبه به این نکته را بکنید چهت بازی بدونید مولوی در مصنوی در اواخر دفتر اول مصنوی ماجرای ابن ملجم و امیرالمؤمنین المامنه رو مطرح میکنه میگه آقا این که مرد خلاصه مطلب اینکه که ما بگیم ابن ملجم زد حضرت عالی رو کشت حرف بگی ابن ملجم حضرت عالی رو نکشت خدا حضرت علی رو کشت خب ابن ملجم چه کاره بود؟ ابن ملجم ابزار دست خدا بود یعنی خدا دست ابن ملجم رو بالا برد پایین او برد حضرت تعلیل رو کش. یعنی بین ابن مولجم و شمشیری که دست حضرت علی است هیچ به شمشیری که دست اوست هیچ فرقی نیست هر دو دو تا عبزارند لذا جالبه میگه شما حق نداری ابن مولجم رو لعن بکنی خطاب به از قول حضرت تعلیل حالا کجا حضرت تعلیل هم که حرفی زده نداریم دیگه حرفه جعلیه که حضرت حالی خودش به ابن مرجم میگه تو وقت ضرب زدی به سر من آلت فعلی و فاعل دست حق تو فقط آلت فعلی فاعل واقعی خود چون زنم بر فعل حق من تن و دق من چجوری تو رو بیام لعن نفلیم بکنم یا دیگران رو لعن نفلیم بکنم خدا سنجام داده متحرفش اینه صحت تو همون جایی که از اشایره بحث میکنه میگه آقا اشایره تنها هست که تو دنیا فهمیدن این حقیقت ها که ما مجبوری مقتن نیست. بقیه همه متشرعان مومنان حتی حکیمان فیلتوفان اگر بگن اختیار اینا همه عوام اینا تو قیامت که پرده ها کنار بره همین میفهمن حق با اشایره بوده خب پس اگر این اینجوریست که لعن ابن ملجم جایز نیست خب پس لحن هیچ کس جایز نیست پس این همه که خود خدای متعال لحن می کند در خود قرآن کسانی را یا عیم دست رو به لحن میدن. پس این یعنی چی؟ یعنی, ابن مو... یعنی خود ابن عربی فهمید نظریه وحدت موجود رو خود خدا هم نفهمید خدا و هم نفهمیدن که لند جایز نیست اما ابن عربي فهمی؟ ببین خب با سارا سار آیات و روایت که آقا غیر خدا رو ظالم رو نمیدام مشرک رو لند بکنید، منافاد داره رو باشید من چکلی فرصه اگر اجازه بدید وقتی که بیتونن سوالات رو بزرگوارا رو سریعا در کسی نوید، بنویسید سوالات رو اگر سوال دارید بنویسید، به ببین خب بهتره بالله من اجزایی میخوام تو پنج دقیقه فقط فیلی سوال تمامش بکنیم دقیقه سوالات رو هم مجازی رو باز هم حضورد. بله بسیار خب اشکال بعدی گفتیم انتصاب همه افعال قبیه به خونه دیگه من وارد این بحث نمیشم بیشتر از این اشکال بعدی است که نه تنها همه افعال حتی افعال قبیه را باید به خدا نسبت داد همه صفات بد و قبیح رو هم باید بخوره. وقتی یه موجود بیشتر موجود نیست پس همه صفات هم صفات اوست اینا برداشت های من نیست این عباراته مطمئن تا که فرصت ندارم من این عبارات رو بکنیم تصریح میکنن که حتی بله صفات بد و قبیح و اینا همه صفات خود هست میکنی که من گفتم اگه یه خورده شما گیر بدی و آرف اون حرف آخر آخر میزنه آقا بله اصلا راستش موقع همین فایل فاعل دروغ دروغو خداست موصوف به صفات قبیح و اینام خداست جاهل خداست عالمم خداست عاجز خداست قادرم خداست تصریح میکنن که آقا خدا هم واجب الوجوده هم ممکن الوجود یعنی همه صفات مخلوقات رو به خدا نسبت میدن و حتی قباید مثلا ملاسد را از قولتی تو اصفار جلد هفت صفحه 188 188 و 188, 188. 188. 188. 188. نظر عرض کنم که ابن عربی توضیح میده خودش هم در پایان همه این نظرات رو میپذیره ملاسای باره ملاسد را ازلم یکنی الوجود الا هو در عالم وجود جز خدا نیست و فعل و هو و, و. جز فعل و صفت و وجود خدا هیچی در عالم نیست رزاست که عرفا تصریح میکنن که بله خدا متصف به تمام صفات نیاز و نقص و اینا هست چون غیر خوب نیست که بخواد الان کسی رو مؤاخذه بکنه نکنه بقیه حالا چادر محدود من فقط میگم تیتروار فقط خب نظریه مزبور گوشت با علم حضوری ما به خود منافات داره غیر اون چیزایی که گفتیم ببینید ما به علم حضوری مییابیم که دیروز جاهل بودیم امروز عالم شدیم درسته اگر همه صفات به این نکته دقت کنید اگر همه صفات صفات خداست اونی که دیروز میافته که جاهل بوده که و امروز عالم شده اگه غیر خدایی نیست خدا میافته که دیروز نمیدانست حالا میدانه اینا رو میشه به خدا نسبت دار دیگه حالا اشکالاتش اشکال دیگرش مطلب این است که اصلا با این نظریه بسیاری از اصمان صفات الهی معنا میشه مثلا گفتیم مثل ستارال اگه غیر خدایی در آلم نیست خدایی به کیو میپوشونه؟ می پوشونه یعنی به قفار و زنوب گناهان کی رو می بخشه گناهان خودشو؟ اصلا بسیاری اصفات خدا هم اصلا بیمحنان میشه؟ یعنی مصلاق اصلا پیدار می و آخری نکتر بگیم بقیهش دیگه اگر حالا یه موقع قرار شد این همایش مقالاتش مثلا چاپ بشه ایناینا رو به صورت و مقاله بدیم حالا همش آخری مطلب این است که اگر فایل همه قبایه، ظلم ها، گناه ها همه خود خداست که <تصفيق> پس عذاب تو قیامت بیمهن است. خدا خودش دروغ میگه دست ابن ملجم رو هم خودش بالا میبری میزن گردن از رو قد میکنه بعد وقت ابن ملجمو جهنم میبره اگر فایل همش خودشه اون چرا اون رو میبره جهنم میبره علی عزالدین خود خودش میبره جهنم و جالبه که اون تفسیر ابن ادبی است جهنم دیگه دیگه واقعا آخر چی بگم واقعا طنز دیگه نمیدونم که آقا ذات بهشتیان با بهش سازگاره ذات جهنمیان با جهنم سازگاره همونطور که بهشتی تو بهشت لذت میبره جهنمی تو جهنم لذت میبرن جایی تعبیر داره که حتی نه نه اصلا چون بر اساس یه مقاله لفظی که عذاب از ماده عذب است نمیدونم عذبم یعنی گوار ها و فلا این حرف پس جهنم هم برای جهنمی گوار است. و جالبه که اون یا سریه به احتمال زیاد خود ابن عربیه، دارم بازمدهش که جهنم اینجوری نیست که تو جهنم، جهنمی تو جهنم از آتیش نا راحت بشه، داد و فریاد کنه نه یطلا اون به نار بر، نمیدونم، اقاره بر فلان، نه بابا جهنمی، اونجا با آتیش جهنم شروع میکنن، بازی میکنن و عرض کنن که با مارا اقربای جهنم بازی میکنن و خلاصه به تحروم یک جهنم یک سفاسیتیه که بیاو ببین حالا بهش برای بهشتیه سفاسیتیه جهنم برای جهنمیه سفاسیتیه جهنمی که قرآن توصیف کرده اینه لذت می‌برن از جهنم بعدم آتش بازی می‌گه خدا اونجا به جای جهنم شهر بازی راه انداخته جالبه که ملا را تو اصفار همین عبارات ابن عربی رو نقل میکنه که بله جهنمی ها تو جهنم خوشن لذت میبرن برن بلانن. اما بعدا در یکی از آثار اواخر عمرش فکر می باز آدرس رو دارم عرشی است یا مشاری کروه این دوتاست عرشی هست بعد از این حرف توبه میکنه. میگه نه من هرچی واقعا خلاصه وجدانه نشسان فکر کردم دیدم نه این حرف که جهنمی ها تو جهنم خوشن این با آیات قرآن و اینا سازگار نیست و جهنم جای عذاب است جای درد و رنج و آلام است و اون حرفی که یعنی حرفی که زدم اشتباه بود و میگه بنابراین یکی از نگرانی های جهنم یا تو صحنه قیامت این که نکنه یه وقت شفاعت بشن برن عجبور بشن برن بهشت نکنه شفاعت بشن، برن بهش، چون از بهش خوششون نمیاد، اونا تو جهنم خوشن. لذا داره تو فوتوات که ملاسلام سلام اینها رو تکرار میکنه اونجا. که اون موقعی که دیگه باب شفاعت بسته میشه، یه گفته میشه شفاعت تموم شد، جهنم حالا به تعبیر بانگرد، آخه جون، دیگه بهش نمیدیم، میدیم جهنم، خدا رو شکر. خیلی عرضم تمام گفتم 20 تا مطلب آماده کرده بودم. حالا دوازده تاش رو فقط دیگه فهر گفتیم گفتم. حالا دیگه بپردازیم به سوالات ببخشید عوض میخوام و صلی اللہ و آل محمد و آل محمد, محمد. تو این فرصت هندک اگر سوالی هست. بله بسیار عالی عرض تشکر داریم از دکتر حاجها علی افضلی که لطفرم بودن. و خیلی مختصر، مفید و جنبندی من یادم اومد اینکه فرمودید مورد شش که تصریح دارن حتشان حالا شب جمعه نه داره، هنوز شب نشده شعر بخونیم چون نه داره شعر خوندن در شب و روز جمعه که بله همون بود، همش خودش بود، هر لحظه به شکلی بود، تایار، برا دل و نهان شد، هردم ادم به لباسی، دیگران یار، برا گه پیر و جوان شد، گه نوه شد و. کرد جهانی به دعا غرق خود رفت به کشتی گه گشت خلیل و به دل نار برآمد آتش آره. گل از آن شد خودش بود یوسف شد و از مصر فرستاد قمیسی روشنگر عالم از دیده یعقوب چو انوار برآمد تا دیده ایان شد چیزی جز او نبود حقا که همو بود یده بیزا می کرد شبانی در چوب شد و بر صفت مار برآمد استاجی رو بلا زان فخر کیان شد زان فخر کیان شد میگشت دمی چند بر این روی زمین او از بهر تفرج عیسی شد و بر گنبد دوار برآمد تسبیح کنان شد بل جمله همو بود که می آمد و میرفت هر قرن که دیدی تا عاقبت آن شکل عربوار برآمد دارای جهان شد تازه میخواد رفع شب هم بکنه که وقت فکر نکنید من قائل به تناسخم منسوخ چه باشد نه تناسخ به حقیقت آن دلبر زیبا شمشیر شد و در کف کرار برآمد قتال زمان شد نی نی که حمو بود که میگفت ان الحق حالا ادامه دارم ما خیلی دیگه برای این در واقع توضیح آره نظریه تجلی از این صحبته که خیلی فر یکی خب از سوالات, سوالات من چند تا اینجوری حضوری ها رو بپرسم چند تام مجازی یکی سوال کردن با توجه با آن فرمودی در مورد حد برای او تعالی و خلاف آن با های دینی ما آیه هو اول و الاخر و ظاهر و باطن رو توضیح خواستم ب کنم که بله یکی از ادله نقلیه و شاید یکی از مهمترین ادله نقلی عرفا در اثبات نظراتشون این آیه اول اول و و ظاهر و من باز در یه همایشی در مشهد چند سال پیش اینو مفصل این دلیل رو آوردم نقد کردم خب الان فرصت نیست فقط اجمالا بگم هوال اول و ال آخر میخواد بگه اولی اصلا ظاهر کلمه هم اینه دیگه اولین موجود خداست آخرین موجود هم خداست اگر میگفت از اول تا آخر خداست حق با جانب شد اما اینو نمیگه میگه اولین موجود خداست آخرین موجود هم خداست یعنی چی؟ اگر ما واقعا اعمر و مفسر آیات میدانیم عالم به قرآن میدانیم شما رجوع بکنید مفسر من با این رو همه را جمع کردم همه را با سند و مدلک تفسیر میکنم میگن اول اول یعنی لا موجوده قبله اولین و اوله است یعنی موجود قبل از اون مقدم بر اون اولین موجوده چیزی مقدم بر اون نیست اول اخر یعنی چیزی مؤخر یعنی بعد از اون مثلا خدا ابه بره بعد از اون چیزی باقی بمونه بنابراین لا اول و علاقه. یعنی خلاصه ازلی و ابدی بودن خدا رو داره توضیح میده این چه ربطی به اینکه خدا در دیوار شد و نمیگه از اول تا آخر خداست که میگه اولین موجود او آخرین موجود هم اون است انقدرم روایت زیل این مطلب داریم زیل این آیه داریم که همین مطلب رو توضیح میدن که بله این حالا جواب نه جواب علیش که حالا یعنی جواب توزنش. حلی رو ان تو مبحث اسام من باز فرضم برای اینه آره. که قبلا این ادله رو لا بود نه اصلا صرفا داریم نقد ادله نقلی. نقلیه وحدت وجود که فرداست ان شاء الله اونجا بعدن فردا خیلی خوب سوالی بعدن. کردن که من گمان میکنم اگه دقت میکنن در اول مبحث شما جواب داده شده ابن عربی در برخی موازه تصریح دارد که خداوند حد نمی خورد و قید نمیپذیرد شگونه اینها رو با خانشی که فهمودی جمع می‌کنی؟ ببقیش احباراتی که من خوندم از خود ده. ابن عربی که خدا ده. حد میخورد و حدهو حد الحق و شالحان ابن عربی و و و و, و, و. پس این رو بود؟ اینها رو خوندم چه از یک در هزارشو که معلوم میشود که نه خدا داره حد می‌خوره این تعینات تعینات یعنی که به ذات خدا میخورد یه تعیون حد خدا میشه دیوار یه تعیونش میشه زمین یه تعیونش میشه آسمان یکیش انسان یکیش حیوان بله باز به اون معنایی که گفتیم شما بیای از این تعیونات یه مطلقی برای خودت انتظاه بکنی بگه اون مطلق ذهنیه اون حد ندارد اونه که تو عالم خارجه چیه وقتی به خصوص حد و تجلی و تأیون هم ازلی است یعنی از همون ازل حد خورده دیگه خدای خارجی حد دارد حالا شما بید دل این حد های یه چیزی بیرون بکش بگو حد ندارد اون یه فرض ذهنیه. بلا باره من که این مراقعه از ابن عربی خوندم حالا یک کسی مرده که خلافشو داره اون مشکل رو حال اون میشه تناقض دیگه یعنی یه جایی میگه حد داری جبر و اختیار خیلی جاهایی میگه جبر یه جاهایی هم میگه برای بله، انسان مختار است. اما حالا اونجا دیگه تعریف اختیار و اینا رو عوض می‌کنن حالا یه بحث دیگری. قبل از سال بعدی چند نفر درخواست داشتن اون مقاله‌ای که فرمودید ممکنه فایلش داده بشه تو گروه برای متخصصین فن یا بعد قرار منتشر. مقاله بشه؟ جبر و اختیار نظر ابن عربی و اینها که در بنیاد فلسفه اینات فرمودید ارائه ای فر... اون زیر چاپ اون آماده چاپ این همراه با مقاله دیگر همایش در میاد، حالا گفتن در هنده نزدیک حالا دو ماسیم و چهار ماه دیگه چاپ بیشه اونجا دیگه مفصل دیگه من گفتم. بعد ها میتونید تجلید... با من تماس بگیرید؟ من در مورد تجلیات که فهمودید سوال میکنن آیا این آیه گویای همون نیست که کل یومین هوافیشن؟ خواستن از سوال که خداوند هر روز یک شانی داره یعنی چه اگر که سوال گسترده تره که بلندگو رو بدیم دست کل یوم فی یعنی هر لحظه خدا بیکار نیست هر لحظه داره تو عالم کاری انجام میده نداره کل یومن و فی تجلی اونم فی تجلی به معنای عرفانیش فی شان یعنی خدا بیکار نشست هر لحظه داره یه کاری تو عالم میکنه خب بله لحظه به لحظه داره به عالم فیض می کل یومن که هیچ کل لحظتن فیشن این که ببینید یه نکتر دقیق بکنید این نکته کلیدیه یعنی واقعا یه خطابیست هم به آرفان ما هم به فیلتوفان ما هم حتی به بعضی از چه محدثان ما, ما متکلمان ما این آقا ما این اصل رو که آیات و همینطور روایات محکم و متشابه دارد هم روایات هم آیات هر دو. ما بگردیم، بگردیم، بگردیم از بین مثلا ست تا آی و روایت سریح، اونا رو همه کنار بزنیم بیایم به یک و روایت متشابه متمسک بشیم، بعد هر چی میخوایم آقا اگه دستور قرآن نیست که آقا مه... اگر اون متشابهی برخورد کردید متشابهات رو محکمات برگردیم اگر یه آیاتی مثلا متشابه ممکنه مثلا ازش تعبیر جبر بشود مثلا اونه که از محکمات عقل و کتاب و سنت اختیاره پس اون آیات رو باید تفسیر بکنید که برگرده به این محکمات و بقیه شما یک دلیل مواقع قاطعیت عرض یک دلیل محکم از آیات و روایات محکمات ندارید که مثلا اینجا نظریه وحتر وجود رو تصمیم اصلاح اشاره بکنی یا تایید بکنی یه دونه نداری. من اگر یکسی یه, یه دونه روایت رو بر به جایزه میدم از محکمات، نه، از متشابات نه هم محکمات این که ماهی بگرم، مگه ببخشید، مگه اشاره غیر از این عمل کردن مگر اشاره در اثبات نظری جبر خودشون به آیات استناد نمیکنه مگه در اثبات اینکه خدا ر با چشم دید با همین چشم باید استناد نمیکنه مگه اونایی که قائل به جسمیت خدان با همین آیات استناد نمیکنه این که نمیشه ما بگردیم از بین هزار تا آیه مخالف یه دونه پیدا روایت یه دونه پیدا کنیم متشابه چشم رو بقیه چیزا ببندیم و که گاهی قدرت اون یه نیست و یه دونه های روایت داری که جهنم یه دو جهنم می می کیف میکنن. یه دونه داری حتی متشابهش نه بله. به بخشت اینجور سؤال کرده نمیدونم توضیح یا سوال اهدی نگفته خداوند متصف به صفات قبیه هست حالا نویسنده اگر سؤال در وحدت وجود چون غیر از خدا وجود حقیقی نیست و وجود غیر وجود خیر مهزست پس صفت قبیه در خارج نیست بلکه این توهم ماست نمیدونم حالا اینو توضیح خواستن بدن از باب معید یا سؤال صفت قبیه توهم ماست یعنی من الان میزنم درد تو گوشی یه نفر به ظلم اگه گفت چرا میزنه میگم با توهم داری میکنی یعنی ابن مرجم تو توهم زده از تلیل کشته شمر تو, تو توهم امام حسین علیه السلام از باب این که وجود خیر محزه است میگن هر قبیه این حرف غلطه وجود خیر محزه از آیات روایت بر نمیاد اولا چرا میگید وجود بعد ما بگیم چیزی که تو عالم داری موجودات. بعد خیر محزم نیستن بعضی از موجودات شر محزن برای همین تا عبد و جهنم میمانن و شمر کجاش خیر محزه اگه اخه با کلمات باگه با موقع منظورتون از وجودینه مثلا منظورتون خداست مثلا از خدا شر صادر نمیشود بله شر به ما و شر به اون معنای منفیش که یک کسی رو مستحق مذمت بکند از خدا صادر نمیشه بله اگه منظور اینه اما شر به معنای صدم زدن از خدا صادر میشه مثلا تمام عالم دنیا همینه بسم الله الرحمن الرحیم قل عوض و رب الفلق من شر ما خلق و من, من شر قاسق ازا و قب و من شر نفاسات و بلقوت و من, من شر حاصل ازا هستند خود خدا دارم میگه که شر مگه اینکه که بگیم خب خدا حالا خیلی از قواعد فلسفی و عرفانی حالا خیلی سر در نمی آورده و نمی دانسته که وجود خیلی مرز نویسنده این سوال اگر خودشون شفای بازن آن مطلق که میفهمد یک فرض ذهنی است این تحلیل شما در فضای ماهویست بقیهش مقداری قابل خوندن نیست سوال کننده هستن؟ سوال کننده هستن توضیح بوده. اما با نگاه وجودی به آن نظر کنیم این نوع کلی دیگه بقیهش بله دیگه حالو بذاری خودش رو مطمئن خاتمه جلسال هم ببخشید بفرمایید که دلوه دیگه. دله بله دوستان شورو میزنید که زودتر در بلند رو اگر بدید دست هاوه که okay. بسم الله الرحمن الرحیم با تشکر از استاد گرامی این که آن مطلقی که میفرماده فرض ذهنی هست اینجا در فضای ماهویه یعنی فرض ذهنی اون چیزی که مطلقی که در بیرون وجود نداره استاد. یعنی بزنید این رو به بخش این جمله حالا با این اوراقیت نوشاد فاز ذهنی منظرم یعنی یه مفهوم انتظائی است که ما از مقیدات یه مطلق بیرون می درسته این حالا. چیز که شما میفرمایید ماهویه ولی در فضای حکمت متعالیه یعنی در فضای حکمت متعالیه این کلیه معنای سئی که در فضای وجودشناسی مطرح هست، این در خارج وجود در اتفاقا تو همون حکمت متعالیه چون ماهیت حد وجود است. در حال که ما قبول داریم، ماهیت حد وجود نیست اتفاقا تو همون حکمت متعالیه است که همون وجود مطلق یا اون وجود منبسط، حالا بگیم به عنوان اولین چیزی که حالا از خدای متعال صادر شود. ماهیت چون حد وجود است اتواقا همون داره حد میخوره ماهویه اتفاقا حرف ملا و تعید و حرف منه یعنی تمام این ماهیات حد وجودن و چون وجودی حقیقت واحد است و در نهایت هم یک وحدت شخصی دارد پس لازمه این این است که حد این حد خود است اذا حد تعریف ماهیت و اثبات مطاله تو من رو تایید میکنه که ماهیت حتت ارز وجود سه ای وجود. عرض بندی نه وجود سی ای وجود سی ای وجودش در خارج چیه منظور شما وجود سی ای خداوند بله این که اول مثلا... معلوم منظورتون چیه بله وجودی که یعنی که اون که در خارج هست وجوده اونی که در اونی که در خارج موجودات هست موجودات آخرا، آخرا. محدود آخرا. و مخدل بله شما از موجود بودن اینها باز یه مفهوم بیرون میکشه به نام وجود تو عالم خارج کوچ وجود کو، اونی که هست موجود داتن. مثل اونی که هست انسان ها شما از ان انسان های انسان کلی بیرون بکشید تو عالم خارج وجود نیست تو عالم خارج موجوداتی هستن که با افاظه خدای متعال ایجاد میشه نمیدونم این سوال چقدر چون مکرر در تجلی سوال شده سوال میکنند که این عبارت تجلی بعضی از خطبا و منبرها ائمبه رو تجلی صفات فعل خدا یا تجلی خدا میدونند این هم مرتبط با همین بحث میشه و انحرافی تو همین زمین است یا نه با با از یکی از مطالبی که یاد داشت کرده بودم که بگم که دیگه نشود این تو اون همایش هایی که ما تو مشهد داشتیم هی هی سال از قرار چاب بشه نشده حالا ببینم اگر فایلش باشه به ها مثلا در اختیارتون قرار بگیره و این ها فایلش هست بنزارم و اون این که بله هم در قرآن هم تو روایت واژه تجلی آمده فلمات ما رب بحول الجبل مگه نیومده آمده تو روایت ها مثلا در مورد شخص پیغمبر اکرم تو زیارت پیغمبر اکرم داریم اللهم معنی هست علی که به تجلل عظل. واجه تجلی آمده اما واجه تجلی به معنی که عرف گفتن آمده تجلی به معنی حالا هم لازم آمده و تجلی یعنی ظاهر شدن یا ظاهر کردن تجلل رب بول الجبل یا مثلا این که ویزا نهار تجلل هنگامی که روز روشن می کند مثلا زمین را رو روشن می کند خب یه نکته کلیدی رو اینجا یادداشت کردم نگفتم اما چون فرصت نیست من استدعا می کنم به قول جناب آقای قرائتی این نکته زیادی زیادی گوش بدید ما در آیات و روایات مطلقا مطلقا مطلقا حتی یک م... نداریم که واجه ای به کار رفته باشه که اون واجه رو بعدها یک عالمان بشری آمده باشن اصطلاح خاص کرده باشن یک مورد نداریم هر واجه ای که در آیت روایات آمده یا به همون معنای لغوی عرفی اون زمان آمده هر واجه یا این که اگرم به معنی اصطلاحی آمده اون اصطلاح تو زمان عیمه مطرح بوده مثلا واجه قدریه چون اون زمان مطرح بوده است عیمه کلمه قدریه رو به کار بنابر این یه مورد نداریم آخه این حرف که به مقام خدا و به اصطلاح عهد به دلائم و سلامه که بگیم یه واجه ای رو به کار بردن این واژه رو بر اساس حرفی که چند قرم بعد ابن عربی یا ملا رو فرزن به کار بردن به اون معنا به کار بردن. یه مورد نداریم یا تمام واژگان قرآن و حدیث معنای عرفی لغوی دارن مثل حادث حادث چیزی که نبوده پیدا شده از اینکه بگیم بگیم نه حادث دو قسمه یا حادث زمانی داریم یا حادث ذاتی داریم اون مخلوقات ازلی هم در رز حادث هنه من اون حادث ذاتی هم از این حرفا دیگه یا روایاتی که خلقت ازلی رو نرف میکنه میگن نه ببینید اینجا معیت منظور معیت ذاتی است همه اینا رو میدونم یعنی به, به این اشکالات آگاه هم که دارم میگن در حالی که حدوث به همون معنای لغویش آمده چیزی به نام حدوث ذاتی نداریم مگه به معنای مخلوق بگیریم چیزی به معنای معیت ذاتی نداریم معیت به همون معنای عرفی یعنی خدا باشه یه چیزی هم از ازل حال خدا باشی وانا ولی تجلی و وقت اونجا تو اون بحثی که مفصل گفتم تجلی تجلی اعظم که در پیامبر علیه السلام متراده با آیات آیات الهی نشانه های الهی به همین خاطر پیامبر اکرم میشود آیت الله العظما بزرگترین آیات خدا یا تجلی اعظم تجلی یعنی چیزی که شما با دیدنش به وجود خدا پی میبرید خدا وجود خودش رو در این آیات به ما نمایانده بله به این معنی دارید این معنی نمیدونه روایت یه کلمه به کار ببرم بیکنم سب کنید چند قرن شما نمیفهمید بعدن بعدا یه آرفی بیاد یه معنای خودش برای اون واجه ترک بکنه بعد بگیم که خب امام صادق برای پنج قرن بعد این حرف زده یعنی این واجه هسته دقیقا من حرف من واجه هسته واجه هایی که در علوم بشری اسطلاح شده از حرف من رو درست بگیرید یعنی یه فیلسوف آرف یا متکلم یه واجه ای را اسطلاح میکنند بعد بگیم آیت رو باید هم واژه رو به کار رو کلمه لطف بعد قایده لطف متکلمه توش در میانه قایده لطف ما نداریم تو با، به این به صرف کلمه لطف دشترکر جناب صد... چون حاضرین جلسه همه همچنان ملتظم به لوازم همه شریعت هستند دلار. وقتی در شده همه قائل به شریعت هستند تقدیر و تشکر داریم از جناب دکتر افضلی که واقعا زحمت کشیدن یعنی لطف و مننت گذاشتن بر سر ما از تهران این راه رو اومدن و این انگیزه ای ما رو در ادامه این کلاس ها قوی میکنه من عذرخواهی میکنم اگر حاضرین در جلسه بزرگواران اساتید و اندیشمندانی که اصلا معرفی نمیکنم فقط تقدیر و تشکر کنم از آیت الله حسینی که در جلسه حضور دارند بزرگواری فرمودند و حتی نکاتی رو تذکر میدادند و جناب آی دکتر صفوی که در جلسه حضور دارند ممنون و متشکر هستیم انشاءالله که در مدارس فصلهای بعدی که ادامه داره انشاءالله بحث ولایت انسان کامل مهدویت در تصوف و فرجام شناسی مباحث مهمیه که امید داریم مدارس بعدی ادامه دار باشه شب ولادت کریمه اهل بیت هست تقاضا داریم خداوند عیدی امشب همه ما رو این قرار بده که هممون باشیم زنده باشیم ببینیم فرج مولانا صاحب الزمان زمان عجلل و ظهور ایشون رو عجلل الله تعالی فرجه الشریف ختم جلسه به برکت صلابات بر محمد و آل محمد